حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با علمش دل ببندیم اجوا که دلم پیچیده توی دنیا, دنیا. از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواه که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا تو چطور خوبی؟ خوشیم سلامتی؟ چه خبر؟ من حالا خوب نیست سدام در نمیاد سدام در نمیاد خوبی این چه خبر؟ مریضم ماریزا، بذاری موزیک برو موزیک برو خوبیم خوشیم این چه خبرها؟ ما بعد نیستیم دیگه شهرام خوبی؟ چه خبرها؟ سامی خوبی؟ سامی خوبی؟ دور بایستیم جلال خوبی؟ شراگیم خوبی شراگیم نیست اینجا ولی خوبه آقا به جان خودم امروز من خودمو کشوندم تا استودیوها ها اصلا از دیروز اصلا حالم کشنی شب خوابیدم صبح بیدار شدم همه جام درد میکنه حالا همه جام همه جای همه جام که نه ولی حالا بیشتر جام آمپول آنزو خوکی نباشه حالا به خدا نگرانم در حال اومدم دیگه امروز از من فاصله بگیرین. بچه های وقت نگیر ازم شما به مقدار با فاصله بشینین برنامه گوش بدین درقل یک دو وجب فاصله بگیری چون من خیلی نزدیکی میکروفون هم چون صدام در میاد. دیگه یک کار از مکمکاری عب نمی کنه دیگه. بریم سراغ موضوع امروز دیگه بسته دیگه خودم خیلی لوس کردم دیگه بسته دیگه استاد مالک این تو دماغان خب امروز برنامه 947 رادیو پاسوردا یک شنبه 22 آذر 94 رو با شما پی میگیریم و میریم سراغ تبعیض تحصیلی و میخوایم در مورد تبعیض توی محل تحصیل با هم صحبت کنیم دیگه میدونم آه از نهاد خیلیاتون بلند شد نگران نباشین امروز انتقام هر تبعیضی که توی دوران تحصیل در حقتون روا شده رو میگیریم بله بله سلام و مخصوص ح می کنیم خدمت همه اون معلمهایی که همیشه میشه هوای اون بچه پولدارهای کلاس که میرفتن خونش و خصوصی بهشون درس میداددن و بیشتر داشتن و یه سلام ویژه تو هم با چشغ رم داریم خدمت مسئولین محترم آموزش عالی که دانشگاه رفتن و دانشگاه رفتن و درس خوندن رو هم خودی و غیر خودی کردن و خیلی از جوانای با استعداد و درسخونه مملکتمون رو به خاطر عقیده و مذهب و طرز فکرشون ممنوع تحصلی کردن. شرام سامی برو بریم امروز هم مریض هم و دست اینا حساب ندارم ما برو بریم اشید جان سلام سلام علیکم تعیز یعنی اینکه یه اپلیکیشن درست بکنین که فقط iOS بتونن بسونن برنامه تو با اپلیکیشن گوش بدن مجید هستم از سوئد مجید جان خب اخر این تعویز نیست که قضیه اینه که ما اپلیکیشن مال خودمون که نبوده خودمون که نساختیم فرهاد زحمت کشیده این اپلیکیشن iOS رو ساخته لطف کرده و ولی خب کسی باشه که لطف کنه و برامون بتونه اپلیکیشن اندروید هم بسازه خب ما خیلی خوشحال میشیم ولی کسی نمیسازه خب چی کار کنی؟ کسی ما رو دوست نداره اندرویدیاش اونایی که اپلیکیشن ساز هستن ما بارها گفتیم خب بسازید دیگه, دیگه تموم شد دیگه دو ما دیگه تمومه والا دیگه این همه پنج سال شیست سال داریم پس فردا میریم دیگه بسازید دیگه ولی خداییش اینو جدی میگم من حالم واقعا بد بود امروز ولی وقتی برنامه شروع میشه من همیشه حالم بهتر میشه حالا همه بدنم درد میکنه ها ولی صدام هم در نمیاد ولی وقتی برنامه شروع میشه میکروفون روشن میشه میدونم که شما دارید منو میشنوید حالم خوب میشه بریم سراغ برنامه خودمون دوستان عزیز خانم ها آقایون دختر خانم ها آقای پسر از اونجا که خب قضیه ورود یا به قول آقایون نفوذ حسن آقای خمینی به مجلس خبرگان یا خبرگان داره دیگه کم کم جدی میشه اینه که حجت الاسلام صدیقی توی نماز جمعه این هفته یک اشارات همچین ملو و غیر مستقیمی کردن به سبت اسم آقای حسن خمینی برای انتخابات خبرگان و تذکری دادن به شورای نگهبان که به وظیفه الهی خودشون در رد سلایت کردن ایشون با قاطعیت عمل کنند. این نوع حرکت ها همیشه از سوی عده ای که نگرانن که انتخاب نشن نتونن شلوغ بکنن دامن زده میشه و میبینیم که قبل از اونها یا بعد از اونها رسانه بیگانه آتش افروزن آتش بیار مرکن تایید میکنن متاسفانه صدا هستند با اینا و این رسانه بیگانه ما رو میگه ها ای واسه حسن تبلیغ میکنیم مخلصه مخلصه دود دود دود دود دود حسن خمینی دود دود دود دود دو حسن خمینی ببخشید من پریدم میونه کلام ایشون خواستم بگم ما رو میگفتن همینطوری ادامه رو برو شهرام جا ادامه رو برو شورای نگهبان ما مطمئنیم با فقاحتی که دارن با دیانتی که دارن با اعتمادی که مقام معظم رهبری به اونها کرده است و مجاری قانونی به اونها اعتماد کرده اینا با این ها نمی لغزند بله و بلکه مصممتر میشن متوجه میشن که خبرهایی هست معلوم میشه اشخاص ناسالهی مترهند و با نداشتن صلاحیت میخوان خودشون رو تحمیل کنن بله دیگه تابلوه دیگه حسن خمینی اگه ریگی به کفشش نیست پس چرا فتنگره و ما رسانه های بیگانه انقدر سرسده را انداختیم برای کاندیدوتوریه ایشون. اصن ما چرا الان بعد صدای آقای صدیقی رو پخش کنیم با شوخی کنی؟ حتوی خبری هست دیگه ها؟ ولی خوشبختانه شورای نگهبان بدی نیست که با این بادها بلرزه و همونجوری که چند وقت پیش رفسنجانی رو به خاطر سن بالا رد صلاحیت کردن، ایشون هم احتمالاً حالا به خاطر سن پایین رد صلاحیت میکنه جلوی نفوذ به قبرگان رو میگیره اصلا قبرگان رهبری شرط سنی دار آقا جان. باید بالای 85 سال باشیم اون تا اونجا تایید صلاحیت بشی. حال ما ببین کی سلام فرشید جان سلام علیکم قربونت برم آقا امروز پنشمبه هست اوه پنشمبه من شمال ده ساعت تو جاده بودم به به الان هم جاد خالی ساعت یکه بعد از ظهر دمای هوا چارده درجه آفتابی خوب یه باد ملوم علسی هم داره میاد جاد خالی ها با. یعنی سانروف ماشین رو ما کردیم داریم لذت میبریم جای همه تون خالی قربونتون با عیب نداره دیگه حالا شما چون ده ساعت تو ترافیک بودی حق داری از آفتاب و هوای خوب لذت ببریم من خوشحالم استثناءن این یک مورد رو من خوشحالم ایش حالا خوش بگذره بهتون برگشتن یه چارده پونزه ساعت دورها باشیم دیگه برگشتی دیگه اعتمالا دیگه ها و اما خانم آقاین میدونید که الان اگه ما سه تا مشکل بزرگ تو کشورمون داشته باشیم یکیش این علوم بی حیا و بی تربیت انسانی از هفته پیش داله همجوری مصولین عزیز هی درباره بودن و نبودنش تو مدارس از خودشون تشعشعات بیرون میدن آخرین خبرم از زبون گوینده خبر سیما بشنم لطفا وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد گسترش مدرسه فرهنگ به معنای حذف رشته علوم انسانی از مدرسه دولتی نیست. بله، به حمدالله در مورد این خبر در عرض یک هفته رکورد 85 بار عوض شدن حرفا رو داشتیم که خب اینو بعد ثبت کنن واقعا یه جور یعنی هی گفتن هست، هی گفتن نیست، هی گفتن علوم انسانی حذف میشه کلاً، یه گفتن نه حذف نمیشه یه ذرهش میمونه. حالا حرف از علوم انسانی شد دیدیم یه حاج آقای مسئول مرکز پرورش علوم انسانی اسلامی صدرا هستن. ایشون جمله ای گفتن جالبه، گفتم براتون بخونم. جمله شنو گفتن مهمترین آفتی که متوجه پیاد روی 40 است سکولار شدن آن است سکولار شدن این حرکت یعنی اینکه خالی از محتوای انقلابی بشود الان این جمله رو خب براتون از یکی از مسئولین علوم انسانی مملکت نقل کردم تا قشنگ بفهمید دنیا دست کیه یعنی اینا پیاده روی 40 همچون خالی خالی که نمیشه که باید عزیزان همچونی که پیاده روی میکنن هی انقلاب کنن برن جلو هی بعد انقلاب رخ بده بله این علوم انسانی استاندارد و مورد علاقه آقایونه اینا رو گفتم مزنه فقط دستون باشه. سلام صبح بخیر. البته شما هم صبح بخیر و هرچی. اینقدر دیدم همه هی از کشورهای خوب زمین میزنم میگن هواشون خوبه و بریزیل و نیوزلند و این جه ها من از میلان زنی میزنم خیلی یخه هوا ما همش میریم بیرون دست یخ میزنه دستکش دستمونه تازه کمه میکنیم تو جیب همون دست با یه شالی بستین ما هم تا زیرا پیشونی اومده پایین فقط دوتا چشم پیرونه اینه ما ما هم سردمونه خیالت راحت اینه شمایی. آخه. نوازه به خودتون باشین فداد خدافز قربونت یعنی این پیغام های شما واقعا به ما قوت قلب میده ها مرسی برامون از سرماهای شهر شهرهاتون لطفا بیشتر بگین بذارین ما در قلب جمهوری چک در پراگ <تصفح> حس کنیم که شما هم پا به پای ما دارید منجمد میشین واقعا مرسی از پیام پرسوز و سرماتون که دل ما رو باشون گرم میکنید واقعا تشکر میکنم خب امروز بیشتر مناطق کشور هوا آفتابی بوده و البته توی خیلی از مناطق این آفتاب همچی جونی هم نداشته به خصوص توی تهران که و والدگی هوا هم مزیده بر علت شده بود امروز کلن یه فضای غبارالود و سرد و همچی کافکایی و دلگیری داشتن تهرانی ها نبینم هوا توی روحیتون اثر سربزاره ها؟ آره بابا آدم باید هوای آب و هوای دلش بعد همیشه برزیلی باشه اما فردایه مقدار برف و بارون توی غرب و شمال غرب ایران داریم ایلامی های عزیزم باید خودشون رو برای یه سیل و آب گرفتگی دیگه آماده کنن اینه که عوضتون باشه مخصونایی میخواین سمت جاده کوستانی برین پراید مراید و بذارین گوشه پارکینگ از باجناغتون شات بلند رو بگیرین که غیر از این باشه تو برف و یخ گیر میکنی نگفته باشم بله ریلکس ریلکس واسه خود رو انداختی من ساعت پنج اومدم تو الان که برنامی جنویل ساعت نو رو بداره پخش میشه خندو نصف کارو من نکردم آقای ریلکس شما با... تشکیف ببرید ریلکس برموت نجده کنید ریلکس ما داریم کار میکنیم جمع جور میکنیم میشوریم میصابیم ریلکس فرنام ساعتی 6 را پاشیم میم سر کار ریلکس بابا چقدر تو پا همه پره خب ریلکس نکنین بیا خوبی کنین همه بیا موزیک مدیتیشن براشون پخش کنین میشه نتیجهش اب نداره لیلکس نکنین شام... سامی جان شهرام جان میخواستم میگم شامی یعنی سهرام, و ش... سهرام و شامی این <تصفح> مال قرصایی که خوردم تأثیر اون آقا لیلکس نکنین سهرام و شامی اون یه دنو اما آهنگ خفن خولی ها رو بذار اینا با آرامش و ریلکسیشن مینوین مینوین نذارن آره لیلکس آهان آهان خوبه تو شد زیادترش کن زیادترش کن مقصو بترکن مقصو اینه نه لیلاکس بردی پایین صدا رو بیا بالا بیا بالا بس بس بابا الان سکته مکته میکنن ملت میوفته رو دستمون بعدا میان شکایت میکنن ول من خودم تو کثیبی گرفتم چی آخه بریم سراغ برنامه خودمون رادیو پس فردا 947 امروز یک شنبه 22 آذر میریم سراغ تبعیض تحصیلی انتخاب شاگرد برتر بدون دخالت نمره و سواد و هوش با شماره 947 بدانید و آگاه باشید که تبعیض گذاشتن بین دانش و دانشجویان باعث می شود که پس و افرادی با آیکیوی هویج و قابلیت های کدو تمبل در کشور به مدارج بالا برسند و آن موقع که این افراد با مدیریتشان کشور را احمدی نژادیزه دیزه کرده به لبه های پرتگاه ورشکستگی رساندند می فهمید که شوت کردن آدم های قابل و بالا بردن آدم های شوت عاقبت دامن خود شما را می گیرد. اما چه سود که در هر صورت شما از شوت شوندگانید امزا از انواب و اقسام تبعیزهای کنکوری زخمی شده های برای رفتن به جبه های حق علیه تبعیز تحصیلی آماده های راژیو هست برده چه شودی اون نگاهمونه اون طرز فکرمونه که تبعیض خیل میشه و الا دختر یا پسر بچه یا بزرگ شهری یا روستایی رنگ پوست رنگ چشم قد وزن یا همون چاقی و لاغری چشممونه که فرق میذاره نمونهشم نگاه مردا به این زنای بیچاره که اونا رو کرده توی چادر چاخچول چه اسمی هم داره چادر چاخچول خیلی متشکرم چادر چخچوغه فکر کنم یا چادر چاخچوره چادر چخچوغ نمیدونم و ولش کن هم که شما گفت یعنی این تبعیض‌های تحصیلی تو مملکت ما یه چیز خیلی خیلی خاصه. شاید الان شما بری بری مثلا یه خارجی تعریف کنی که تو کشور ما بعضی از آدما برای ورود به دانشگاه ها به بعضی دیگه از آدما اولویت غیر علمی دارن طرف شاخ در میاره. اینی که چه کاریه نگین به کسی هم آبرومون نره هم طرف شاخ در یعنی من دارم الان از منبع معتبر نقل میکنم براتون که مثلا زمان جنگ یه عزیزی محصل دبیرستان بود همکلاس شما. یشون یهو دلش هوای شربت شهادت میکرد تا میشد درس زندگی او ول میکرد میرفت منطقه بعد یه مدت هم شربت شهادت بهش نمیساخ بر میومد حالا این عزیزمون درس زندگیش چی میشد؟ هیچ اینجوری بود که یادبی طرف میوفته توی سیکل تحصیل زربتی و چنان زربتی بسیجیوار درس میخوند که شما که همکلاسیش بودی و درس ول نکرده بودی بری جعبه هنوز دیپلم نیارفته بودی ول دوستمون رفته بود داشت کنکور زد میکرد اون موقعها البته ما جرعت داشتی به یه همچین روند تبعیزامیز تحصیلی اعتراض کنی به 17 تا اتهام نوشته شده و نانوشته محکوم می شدی حالا نکته فجیناکترش اینه که اون عزیزان با اون بایه های غوی بعدن می مدن می شدن مدیر و وکیل و وزیر و اینا او او او خدا به خیلی کنی این هفته از شما خواستیم از تجربیات میزی بگین که سرتون اومده مثلا توی خونه تحتقاری نبودین با اتون مثل کزت بینوایان رفتار می شده یا چون بابا ننه پولار نداشتین توی مدرسه سوگلی معلم و نازم نبودین یا مثلا برای پیدا کردن دوست دختر یا دوست پسر حسابی به زحمت افتادین چون و مازراتی زیر پاتون نبوده یا مثلا شده تو خارج از ایران وقتی فهمیدن ایرانی هستین باهاتون یه جور دیگه ای برخورد کرده باشن این هفته میخوایم سرتون رو بذارین روشونه ما و خودتون رو سبک کنین اینه که چیزی رو تو دلتون نگه ندارین و همه این رفتارهای ایزامیزی که تو زندگی بهتون تحمیل شده رو بیرون اگه خاصه نامه عشقم بریزین جلو خودتون ما درکتون میکنیم فرشید رفقا اولین اینکه ازتون خیلی سپاس گذارم نهدل هیچ خاصی فقط چون امروز رو حالات سپاس گذاری هستم بعد از تبعیض براتون بگم اینکه من که کلا الا هیچ ده سالم این هیچ سال گذشتهره که توروپا زندگی می کردم هیچ تبعیض نسبت به ایرانیا احساس نکردم ولی همین که وارد خاک پاک آمریکا شدم پام از فرودگاه گذاشتم بیرونین باد زیبایی تبعیض هم خرد تو صورتم خلاصه فرق میکنه از اون جا. بله، مرسی. چه حال خوبی داشتین؟ حاله حالت سپاسگزاری داشتین امروز. چه خوبه. منم امروز البته مریضم ولی خب با حالت همین بود که این حال هم این بود که پیغامتون رو پخش کنم. چی شد؟ حالا آمریکا من نفهمیدم برامون از اون باده داشتین میگفتی خب اونجا که میگن نمیدونم مولتی کالچوراله و نمیدونم چی چیه و نسبت به اروپا کمتر این چیزا و تبعیزا و اینا هست که این چه بادی بود خب خورده نگفته، همین فقط گفت یه بادی اومد به پیچون. گذاشت و خماری. ریدون جایی از جایی که تبعیض نیست امضا کرده برنامه ما رو از قصر دست از شیراز محمد محمد محمدی افواکتی مملی ام ام آ ایران مازندران قائم شهر کوچه اورکیده الانو که بیان منو ببرن خب آدرس میدی همینه دیگه پلاک تام میگفتی اضافه بابای معین از این طرف بهزاد از روتردان هلند رضا قاسمی 14 ساله گراش از گراش فرشید و هم خیلی دوست داریم قربونت برم رضا جون مرتضی روزبه از بندر آلن یونانیان از کالیفرنیا پارمین و پارمیدا از کرج شایان جون از تهران آوا 15 ساله از شیراز آزادو مرتضی از مشهد بلوار ملک‌آباده یا ملک‌آباده نمیدونی شما مشکی نمی‌دونید بعد محمد دیبا تهران دقیقا سر پیچه شمرون. دقیقاً دقیقا همون جایی محمد دقیقا سر پیچه شمرون فایسدی سیمسیما از کانادا چوبین از خونه برونکاینا روی آرام از لندن مردم از بس امضا کردم تو اسمامو نخوندی شبنمینا از تهران حسین از اهل یزد ساکن شیراز امید پلنک هستم و سعادت آباد نشان من از وطن دادی از بر هایی که امضا کردن در اپلیکیشن iOS پای برنامه ما امضا زدند. ایمیل دکتر فرزاد لاهیجانی گفته در زمان دانشجویی در چین در هنگام فراغت به تدریس انگلیسی مشغول بودم که با دو مورد تبعیض و توهین مواجه شدم یک مدیر مدرسه از من خواست که تو کلاس خودم اروپایی معرفی کنم که جوابش تو کلاس دادم با افتخار به دانش آموزان گفتم من ایرانی ام دمت گرم و دو مدرسه که درس میدادم معلم آمریکایی هم داشت که ایشون دیپلم داشت 11000 یوهان و من در اون موقع دو دانشجو دکترا بودم و 7000 یوهان حقوق میگرفتم نه دیگه این تبعیضه نه واقعا تبعیض نه واقعا تب نمیدونم دیگه چی بگم یدولام ایمیل داده گفته تو کشوی ما آه نه تو کشوی ما نه تو کشور ما تو کشور ما بیشتری تبعیض به خانوما میشه چرا آقایون میتونن چند تا زن بگیرن ولی خانوما نمیتونن والا خانوما هم شاید بتونن چند تا زن بگیرن نمیدونم و اه شیده از اه نمیدونم کجا یعنی تو اینستایرام کامنت داده گفته تبعیض وقتیه که تو دانشگاه پسرها هر جور راحتن میگردن ولی اگه دخترها یه ذر بیرون باشه یا منتوشون رنگی باشه بلافاصله فاصله میگیره بله شیداجان البته پسر رو هم این مانتو رنگی بپوشن روی رو سری رو سرشون کنن میگیرن آره شخی کردم البته امیدواریم به زودی این گیردادن ها چه به پسر و چه به دختر تموم بشه یا لعقل اگه که گیر میدن به هر دو به نسبت مساوی گیر بدن که تبعیض قائل نشن در گیردادن به شما و در فیسبوک هم یه دونه کامنت از فیسبوک هم بخونم اه... کبی گفته به نظرم تبعیض تو خانواده و بین فرزندان خیلی بده بین فرزند پسر و دختر هر چند میگن واسه هر پدر مادری دختر و پسر فرقی نمیکنه ولی فاصله بین حرف و عمل خیلی زیاده و البته اونا میگن واسه ما فرقی نداره ولی یعنی دختر باشه میشینه تو خونه کمک مادرش میکنه پسرم باشه که دیگه پسری دیگه هر کار به میکنه برای همین چه پسر باشه چه دختر خانواده بلدان چه جوری رفتار کنن فرقی نداری منظور منظورشون اینه یعنی اینی که میدونن هر کی میدونن چه جوری اگر خواستید از اتفاقات تبعیزامیز یا تجربیات تبعیزامیز زندگیتون برای ما بگید این هفته پسفرد و اترادیوفرد ایمیل ماست میتونید بامون در تماس بشید از طریق ایمیل و یا از طریق اسمس 242-603 874150 و 20420 7335955555 شماره های اس ام اس ماست در فیسبوک گوگل پلاس سام کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید و برامون کامنت بذارید و در اپلیکیشن رادیو پاس فردا اپلیکیشن iOS رادیو پاس فردا نداریم دیگه چی کار کنیم خب فقط یه iOS داریم در اپلیکیشن iOS رادیو پاس فردا میتونید صدای ما رو بشنوید برنامه رو دانلود کنید یا صداتون رو برامون از اون طریق بفرستید و یا امضا کنید پای برنامه ما تلفون های ما دو چهارصد و بیست بست و دو و سی و و که از داخل ایران تماس میگیرند دو 420 بیست دویست و بیست to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we tryna stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the blood and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get outraged. Yeah. This is what you demonstrate And that's exactly how anger works and operates Man, you gotta have love It's a set it straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all People killing, people dying Children hurt and you hear them crying Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, Father, Father Help us, have some guidance from above These people got me, got me questioning خانم آقایون دختر خانم آقای پسرها را در راستای موضوع این هفته برنامه و خصوصا در راستای موضوع امروزمون که راجع تبعیض تحصیلی داریم صحبت کنیم صدای خبرنگار تلویزیون ایران رو میخوام براتون پخش بکنیم الان یه کار جالب کرده رفته از چند نفر از رؤسای دانشگاه پرسیده که بچه هاشون کجا درس میخونن و دانشگاه میرن گوش کنی من دو تا فرزند دارم اسمشون دانش هست. الان دارن در امریکا تحصیل میکنم برای دوره پیشدی. کل سلام من اصلا خارج از کشور تو رشته MBA تقریبا کارای مدیریت مالی خوند. بچه بچهای ما در خارج از کشور مشغول هستن رشته مدیریت. ای بابا چرا یعنی دقیقا مثلا اینکه شما بری از یه قصابی گوشت بخری بعد ببینی همون موقع خود آقای قصاب تلفنی داره به یه قصابی دیگه خودش گوش سفارش میده. خب اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ این دیگه نکنه این رفیقمون اینجا گوشت خری چیز میفروشی که خودش جای اجاد دیگه داره گوشت میگیره قصه این عزیزان رئیس دانشگاه هم همینه حالا البته این سوال پیش میاد که بچه‌های دیگه که دردیشون رئیس دانشگاه نیست و نمیدونم پول مول و رابطه مابطه و ندارن که بفرسنشون دانشگاه‌های آمریکایی جنایت خار و غرب وحشی و اینا درس بخونن چی بعد بکنن تو دانشگاه داخلی بله این دیگه مدیران عزیز مملکت ما اینجوری اصلا فکر نکنید اینا که گفتیم تبعیض تحصیلی بودا اصلا اینا شاید برای منو شما به نظر تبعیض بیاد، اما برای این عزیزان خاطره است، خاطره رو که آدم جدی نمیگیره که. فاشیجا، اصلا کشور ما، خدابندگار تبعیض، اونم همه جو و از همه رنگ تبیزی ولی تمام ایرانی خارج از کشور حتی یک بار تعم تبیز چشیدن اونم از طرف کسایی که یست تنفر از تبیز دارن ولی بیشتر افکارشون و بعضی وقت و اعمالشون پر از تبیز هست اله های من ویبنون دل پر دردت برم اش فکر نکن خارج همینه دیگه همه جور آدمی توش هست درست؟ اما یکی از بدترین و ظالمانه ترین شکل‌های تبعیض گزینش توی ادارات و سازمان‌های دولتیه. حالا می‌دونیم اسمشو چی میشه گذاشت؟ تبعیض نجادیه، تبعیض مذهبیه، جمهوری اسلامیه، تحصیلی، تحصیلی که نیست. یعنی شما در نظر بگیرید کسی های که سالها درس خونده با بهترین نمرات از بهترین دانشگاه و تحصیل شده، بعد که می‌خواد بره توی یه سازمان استخدام بشه، می‌بینی که مثلاً یه خواهر و یا برادری اونجا نشسته داره ازش کوسول دین می‌پرسه اونجا دیگه مهم نیست که شما به فرض بتونی پیچیده‌ترین مدارهای الکتریکی رو با یک نگاه تحلیل کنی یا اینکه چقدر از دانش مدیریت مثلا سر بیاری. اونجا باید بتونی بگی نماز جمعه چند حرکت، غسل چجوری انجام میدن، نظر مراجع تقلید در مورد بهمن چیز چی بوده. و وقتی که جواب این سوالا رو ندونی از همون اداره گزینش مداره که تو میزنن زیر بغلت، رایت میکنن که بری دنبال کارت. تا خدای نکرده به ناحق اون سازمان جای یک نیروی مؤمن و انقلابی رو اشغال نکنی. اینجاست که تخصص و سواد آدم ها و به روز بودن دانش اونا میشه. کشک و معیار بیکاری آدم‌ها چیزایی میشه که شاید 100 سال پیشم کسایی که سواد نداشتن فقط پای منبر میشن از اونا اطلاع داشتن. در نهایت هم کسایی با همون تیپ و ظاهر و طرز فکر 100 سال ت... یعنی همون ت... تیپ و ظاهر و طرز فکر 100 سال پیش اوتودار شغلای مهم دولتی الان میشن نتیجه هم که خوب داریم میبینیم. دیگه. فریبورز غریب سلام سلام سلام به همگی فرشی جان به بسرون یعنی امیدوارم زودتر خوب بشی به آلمانی متشکرم برو بریم چه خبر از ورزش فرشی دست تبعیز تو ورزش شروع میکنم امشب در کشور خودمون بسیار. تبعیز بین زن و مردا خود اصل جن جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترمم مدتی پیش اینجوری بهش اشاره کرده هنوز هم بین مردان و زنان تبعیز وجود دارد. من از مسئولین ورزش و از وزارت ورزش و جوانان میخواهم تبعیز رو بردارید. به به همه دست دادن. خب به این توصیه تأثیری هم داشته یا فقط دست دادن. گوت فرایه نه هنوز تو همون حد کف زدن فردی جان باقی مونده به عنوان نمونه هنوز که هنوز حضور خانوم ها تو ورزشگاه ها ممنوعه یا پخش تلویزیونی بازی دخترها حتی تو اخبار چند سانیه ای از نمای خیلی باز از دور تازه به صورت تیره اتار تازه بعضا پخش میشه از اینا. خب من پس فکر کنم هم کمکان هم باید با همون کف زدن قناعت کنیم دیگه امروز راستی آه. تیم جلال بازی داشت تو تبریز با تراکتور هاشیه چی بود؟ خوب شد گفتی داشت یاد امیره. بازی تراکتور سازی و استقلال تهران تو تبریز بدون گل مساوی شد از حواشی مهمش فرسی جان یکی حضور امیر قرنوی سرمربی سابقه آبی ها بود روی نیمکت تراکتور و دیگه اینکه امروز این موقع خروج ز هتل محل اقامتشون با این وجود که خزینه هتل و تازه مقداری از بدهی قبلیشون بودن پرداخت کرده بودن نوشته ورزشی 3 با ترجمه کارمندای هتل مواجه شدن جلوی درب هتل اجازه نمیدادن بازیکنان سوار اتوبوس بشن <تصفيق> که آره ها کلی شاکی شده بودن از این موضوع یعنی کارمنده هتل آخه من نمونم چی میگن این وسط اینا که میگی بیشتر شبیه فیلم کمدیه تا عاشیای مثلا یه تیم بزرگ توی ایران راستی حالا حرف از <تص> تیم بزرگ شد تیم ما کی بازی داره اوره تیم بزرگ جناب الان با نتیجه امروز که گرفت تو صدر جدول هنوز تیمت فردا بازی داره تو آزادی با گسترش فولاد و پرسپولیس بازی خوبی باید باشه اما الان پرسپولیس تو جدول فرجیا نهمه خیلی مونده برسه به تیم جلال بله بسیار خب ممنونم ازت فریبرز عزیز باد می کنیم تا فردا ها فردا خدا نگهدار انت دی Which old one race superior and another Inferior Is finally And permanently Discredited And abandoned Everywhere is war It's a war That until they are no longer First class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin is of This race but is a war, and we know we shall win, as we are confident in the victory. با سلام بیسوی کسی یک شنبه شب را زمن وحشت از بازداشت دو سوری تبار در سوئیس به دام ساخت مواد منفجره با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماویم <موسیقی> وزارت علوم به برهم زنندگان سخنرانی های دانشگاه ها و نظر فعالان عرصه هوشدار که با به این وزارت علوم بگین احساب خوش کنترل کنه این هم شدت عمل برای سلامتیش خوب نیست؟ عضویت یک زن در شوراهای محلی در عربستان برای اولین بار در تاریخ و برگزاری جشنهاوی سراسری در کل دنیا به خاطر پیشرفت سرساماور کشور متمدن و بسیار پیشرفتی عربستان و دوستی یک ببر با بزی که قرار بود تومه وی باشد در باقه وحشی در شرق روسیه و درخواست گروه های طرفتار حقوق ایوانات که طور خدا این خبرهای دایشی و تروری و اینا این حرفار جلیه این حیوانا نگیر و اخلاق اینا هم یه وقت تاثیر میذاره مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بلی با سلام سایت باستاب در گزارش مفصلی درباره گم شدگان مراسم اربیین امسال در کشور عراق از بازداشت برخی ظاهران ایرانی در عراق به علت ارتکاب جرائم مختلف و همچنین رها شدن افراد مسن از سوی فرزندانشان در این کشور به عنوان دو عامل اصلی مفقود شدن افراد نام برده است در همین رابطه یکی از کارشناسان در مصاحبه با خبرنگار ما جاگذاشتن امدی والدین سالمند در عراق را یک اقدام بسیار معنوی و شایسته دانست و گفت اگر انسان قرار است جایی گم شود کجا بهتر از کربلای معلا؟ و یادوار شد اینکه که والدینشان را به جای اینکه که در کشورهای اروپایی گم کنند در فضای معنوی و قدسی کربلا گم می کنند نشان می که آموزه های نظام در آنها اثر کرده و حتی در دوران گمشدگی هم به مسائل معنوی والدین خود اهمیت بسزایی می دهند. هایان مشروع اخبار ای بله با تشکر از توجه شما تا شبیه دیگر برنامه دیگر و بلبولی دیگر خدا نگهدار خ تموم شد رویم دنبال زندگیمون ببخشید آقا میکروفون ط من یه سوال داشتم نه متاسفانه جوابش منفی بلبول نیست یعنی چی من هنوز نپرسیدم که این میکروفون طلا دیگه من برای احتیاط جواب منفی دادم دیگه چون کارمن جماعت همیشه چیزی میخواد دیگه یا اضافه حقوقه یا مرخصی گفتم پیشگیری به عقل بهتر از درمانی دیگه یعنی چی من سوالم در مورد حرف این کارشناستون بود بابا تو هم گیر میدیاد بول بول. خب خبری تو بخون ولی دنبال زندگی و دکتر دیگه آخه, آخه یعنی چی مردم میرن پدر مادرشون رو تو عراق جا میذارن بعد کارشناس شما میگه چه کار خوبی میکنن این کار درستیه نه خب کار درستی نیست اه. بله و پس برای چی انجامش میدین برای اینکه اگه کارشناسمون بگه کار درستی نیست بعد بعد بگیم خب کار درست چیه اون وقت خب بگیم چه اشکالی داره اشکالش اینه که بعد بگیم اینایی که این کارا رو میکنن فقیرن بدبختن بیچارن بعد میان دم، چیز میکنن دکونمون گل میگیرن میگن می سیاه نمایی کردین و این حرفا دیگه ای بابا باید. دیگه اینجوری نیست های میکروفون تلا دقیقا همینجوری که گفتم بل بل جن گیر نده برو دکتر تو باید دیرت میشه بریم بشین با هم متحده یعنی کن یعنی انتقال نمیشه از شما کرد این چه وزیاخه بریم میگن سیستم مدیریت اکبری همینی که هست خدافز خدافز برو برو سال پیش در چنین دیروزی مصادف با 21 آزر 1304 هجری شمسی رضا شاه پهلوی که البته تا آن موقع به سردار سپه و رزا معروف بود به وسیله مجلس مؤسسان ایران به عنوان پادشاه انتخاب شد به گفته آگاهان در آن روز کسی نمیدانست که رزا بعدها توسط ادهی به عنوان نجات دهنده ایران بزرگ پادشاه تاریخ و عامل همه آبادیهای موجود در کشور در 100 سال آینده و توسط دیگر با القابی چون عامل تمام بدبختیها و مریضیها یک دیکتاتور دست نشانده و باعث ابامی و کشیدن چادر از سر زنان ایرانی شناخته خواهد شد بنا به پیش ها به صورت گرفته این دو دسته حداقل تا 100 سال آینده هم آنقدر توی سر و کلی هم خواهند زد تا یکی از طرفین دعوا خون دماغ شده با برانکارد به بیمارستان منتقل شود شیطون سلام. سلام. دیروز تابیز صورت میکنه خوب یه نکته بگم تابیز تابیزت جنسیاتیه ولی خب نه اینکه زن و مرد همون مردآ همه مستقله یادتی که تو ایران زندگی میکنن و متأسفانه زندگی جالبی تو ایران ندارن و مجبورن بعضا از خانواده از مملکت یا از هر چیز دیگه فرار کردن از ایران برن ولادی بود، بوداشو داشته باشی. ممنون نریمون از ساز اهواز. بله، ممنونم که عنوان کردی. البته همسکسوالا لزوما آقایون نیستن. آ. گفتی نه فقط زن و مرد آقایون فقط آقایون نیستن. داریم که تبعیضی که علیه این عزیزان در جامعه ایران نه فقط از طریق دولت بلکه از طریق خیلی از خود ماها اعمال میشه یه روزی تموم بشه مثل همه جای دنیا اینام بتونن آزادانه توی جامعه زندگی کنن و از زندگی لذت ببرن. اما داستان این عروسک که زایران کربلا از عراق خریدن و با خودشون آوردن و مشکوک به بمب و مواد منفجره و اینا بودن هنوزی هنوزه انگار ادامه داره اول گوش بدیم صحبت های سردار ساجدینی ها رو ببینیم جریان چیه؟ تازگی به هزار عروسک مورد بررسی قرار گرفته که خوشبختانه هیچکونه موردی نداشت خسارت به عروسک ها خورده بود مجموعه پلیس تهران تصمیم گرفت که عروسک های مورد خسارت واقع شده رو و هر حال به نوعی جبران بکنه و هدیه‌ای رو در نظر گرفت که به فرزندانه عزیزمون بدن بله ظاهرا خونه ها هر چی اسباب بازی و عروسک از آرا خریده بودن و احتمال میدودن که توش مواد منفجره باشه رو میارن تحویل پلیس میدن خب اونجا هم چون امکانات نبوده مثلا به جای اینکه با اشعه ای ایکس چیزی شبیه این کنن. کلن دل روده عروسکار رو بررسی کنند کلا دلروده عروسکار میریززن بیرون و دییک پاره میکنن و بدکه می بینن دیگه هیچ ماده منفجری تو عروسکار نیست عروسکار رو با دست و پای جدا شده و کلی کندنده شده و دیکه پاره تویل خونوواده میدن خب طبیعیه که بچه ها مثلا همه جا خورن بزنن زیر گریه خونووادهشون رو تحت فشار بذارن اینجوری شده که خونوواداام رفتن به پلیس فشارها آوردن قرار شده به جایی هر عروسکی که پلیس زده تیچه کرده یه چیزی به این بچه ها بدن که دیگه گریه نکنن و. صداشون رو ببرن به قول پدر مادر را. حالا اینکه این هدیه چی هست و چجوریه و اینا رو ما نمیدونیم حالا امیدواریم جغجغه با عکس معظمله یا یه چیزایی نباشه و نیروی انتظامی چی باید نیست قابل توجه کلیه زایران کربلا که عروسک های خریداری شده خود را تقرید نیروی انتظامی دادند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جهت تشفی خاطر و بند آوردن گریه کودکان و نونه آلامی که عروسک فرایند کشف و سازی مواد منفجر ریز ریز شده است هدایابی در نظر گرفته است هدیه اول فازل هشت قطعی تمثال مقام معظم رهبری هدیه دوم عروسک دارا با لباس بسیجی و هدبند یا آفامنه ای حدیه سوم عروسک سارا ملبس به هجاب برتر غیر قابل جدا شدن حدیگه چهارم عروسک شیطان بزرگ با چهرهی کریه و با قابلیت اشتعال بالا <تصفيق> و حدیگه مخصوص شامل پکیج کامل صوتی، تصویری گلچینی از بهترین جیجی باجیبوجی جیبوجی به مقام معظم رهبری با کودکان و نوجوانان متقاضیان می توانند برای دریافت هدایای خود و شاد کردن دل کودکانشان همه روز به همان مراکز انتظامی که عروسک خود را تحویل داده بودند مراجع نبایند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خدمت مردم ایران اینستاگرام اس SH بیوتیفول مایند گفته تبعیضینه که دوازده سال درس بخونی رتبه سرعقمی بیاری ولی دانشگاهات ندن چون بهایی هستی بله متاسفانه این دیگه خیلی بی‌انصافیه آناهیتا گفته که تبعیزی که من از بچگی تا الان باش درگیر هستم با تو اینستاگرام گفته تبعیض دینی بوده من بهایی هستم و دوران مدرسه از جدا کردن شیر آب و صندلی من با بقیه شروع و تا الان هم با شدت ادامه داره بله نمیشه از تبعیض تحصیلی صحبت کرد از بهائی ها نگفت زمانی بهائی ها رو از دانشگاه اخراج میکردن یا جلوی ورود اونها رو به دانشگاه میگرفتن یعنی تبعیض در سطح تحصیلات عالی اتفاق میافتاد البته خب الان هم این قضیه به قوت خودش باقیه مونتا الان پیشرفت کردند و سطح ممانعت از تحصیل رو از دانشگاه به مدرسه و دبستان و حتی مهد کودک رسوندن فکر کن مهد کودک نه به خود شوخی چیه بابا جدی دارم میگم آقا چند وقتی تو همین کرج نبود مدیر یه مهد کودک وقتی فهمید که از بچه‌هایی که اونجا میاد بهائیه زنگ زده به پدر و مادرش که بیاین ببرینش ما اینجا بچه بهائی را نمیذیم و این حرفا خلاص تصادف کن بچه 5 ساله به خاطر دین پدر و مادر حق نداره بره مهد کودک یعنی میخوام بگم تبعیض تحصیلی از دانشگاه رسیده به مهد کودک و واقعا باید امیدوار بود سطح تبعیض از دیگه کودک دیگه عقبتر نره دیگه وگه نهش باید چند وقت دیگه تو زایشگاه وقتی بفهمن زاو بهایه جلو زایمان کردنش بگیرم بگم برویه جه دیگه بچه بهایی تو دنیا بیار بیمارستان ما جای کارا نیست والله ما از آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملک موتی. سلام الو سلام فارس جون سلام به همه از دم چه خبر کامران الو الو الو فکر کنم یه مقدار صدای ما مولو با مولو دیلی پخش میشه من ها. سکوت میکنم تو بورو بس خودت باش بش میگم همگام داشم می نمیگفتم یه هفته که موضوع راجع به تعویذه بهتره از تعویذه هنری هنری هم هن بگم یک از موضوعات تعویذه میشه سی سینما ایران اکران فیلمات تو زمانایی که میتونیم میتونه فروش فیلمو تضمین بکنه یا برعکس به خاک سیاه بنشونه اساس فیلمایی که یه جورایی دولتی محسوب میشن یا مال آدمایی هستند که از نظر نظام بدون مشکل هستن اکران خوب بهشون میدن برای مثال همین فیلمای آقای مسعود دهنوبکی که معمولا اکران نوروزی رو بهش میدن اینجوری میلیاردی میفروشه از الانم مشخصه که فیلم روسوایی دو جدیدترین کارش برای نوروز در نظر گرفته شده اگه موافق باشی این بخشی از صدای تیزر فیلم که دیشب منتشر شده رو با هم بشنه بشنویم در شهری که رحم نباشد در شهری که باخاری و نزول پروان باشد باید منتظر عذاب الهی بود ها منظورتون از عذاب خدا همون زلزله است دیگه نه زلزله همینجوری که نمیاد یه علائم اثمی و غیر اثمی داره اگه قرار زلزله بیاد خب اون برنامه بیاد که مردم با یه مختصر لباس هم لباس دو تیکه توی سواحل هم دو تا هم میرن اونجا توو بفهمید که یک زلزله نیم بیاد که حد اول این زمینو سه یا دتگون حاجی یتگون بلارنه شاید شب کنه بره بله بخش صدای فیلم روسوایی 2 به کارگردانی مسعود دهنمکی رو شنیدیم صداها که آشنا بود کامرا درست اکبر عبدی فخرالدین صدیق شریف مهران رجبی محمد رضا شریفی دیا و سارا قریشی بازیگرای اصلی فیلم هستند خب از تبعیست تو عالم موسیقی هم چیزی داری برامون بگی کامرا تو موسیقی هم تقریبا همینطوره این که کدوم خواننده کدوم سالون بهش تعلق بگیریم از موزارت تا موسیقیه موسیقی همین ماجرا باید شده روزبه نعمت اعلام بکنه دیگه حاضر نیست و سالون کنسرت بذاره و به زودی به صورت آنلاین کنسرت برگزار می‌کنه همه میتونن به صورت زنده بدون خرید بلیت شاید کنسرت باشه بسیار خوب ممنونم ازت بخشی از یکی از کارهای روزبه نعمت اللهی به اسم بندگی رو با کامرانا هم خدافظی می‌کنه پیشه ما چیست اجاز بندگی آن چه تغییر نپذیرد توی آن که نمردست و نمیرد توی بردرت ای مایده زندگی پیشه ما چیست اجاز بندگی آن چه تغییر نپذیرد توی چنان مورد است نمی رضوی. بگو بگو بگو بگو بگو نامه ابرار امروز تیتر زده بود که رئیس جمهور تاجیکستان تا آخر عمر رهبر ملت شد خب به سلامتی تاجیکستانی ها معظم لحدار شدنده یعنی سدار مارمیشنوی خیلی تبریک میگیم به شما تاجیکستانی های عزیز چشمتون روشن روزنامه جهان سنت به نقل از آیت الله حسن خمینی امروز تیتر زده بود که مردم را نمیتوان فرید داد تا الان که تونستن الان لازم به بعدش هم به امید و خدا میتونن دیگه بارونز ی تفاهم امروز تیت زده بود که پس انداز کردن دلار و مسکن خطرناک ترین اقدام اقتصادی ای آقا شما دلار و مسکنشو برسون همه خطراتشو خودمون به جون می‌خریم شبه دیگه هم تموم شد اجازه بدین از زبون حافظ شیرین سخن اینطوری خداحافظی کنیم به تودیع تو جان می خواهد از تن جدا ببخشید. به به تودیع تو جان می خواهد از تن شد جدا حافظ به جان کندن وداعت می کنم حافظ خدا حافظ شبتون خوش از وقتی رفتیم از وقتی رفتی از وقتی رفتیم رفتی رفتی شبا با این که تنها انگار همش رو عبران بشم از باختی رفته یه یه کنم دیگه سود نمیش گنم دیگه چارو نماس نم نمیگه از باختی رفته از باختی ما سو افوسه دیده از باختی رفته آشکمو ندی از وقتی رفتی شب من صاف و سپیده از وقتی رفتی اشکمو هیچ کی از وقتی رفتی شب ما صاف و از وقتی رفتی اشکمو هیچ کی